بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آلهی و صحبهی اجمعین اما بعد قراره که انشالله با هم مراجعهی داشته باشیم بر ازکار و اورادی که در نماز و بعد از نماز همچنین ما بهش مکلف شدیم و از باب یاد الله جل شه او آن را تکرار میکنیم مهمه که ما معانی اون ازکار و اورادی که چه در نماز چه خارج از نماز تکرار میکنیم معنای هدف چیه؟ هدف شناخت الله که با شناختش حق نماز ادا بشه. حق نماز چیه؟ خشوع در نماز. بالاترین رکن از ارکان نماز خشوع. خشوع نباشه نماز درست نیست. صحابی میاد نماز میکنه نه رکوعش و نه سجدهش درش تو معنی نداشته رسول الله صلی الله علیه و آله بهش تأثیر میده. میگه برو نمازت دوباره عاده کن، دوباره عاده میکنه، دوباره باز او رو برمیگردونه میگه باز دوباره عاده کن. بعد رسول هستان بهش نماز یاد میده اگر می. نماز خوندی با آرامش نماز بخون با تو معنین نماز بخون بدون رکوع چی گفتی؟ بدون درس جزت چی گفتی؟ اصل خشوع و الله جل شانه در قرآن است رستگاری مؤمنان خشوعشون در نماز یاد کرده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون چه مؤمنانی فلاح و رستگار شدن؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون هایی که در نمازشون خشوع دارن اگر خشوع در نماز نداشته باشی اون رستگاری ازت ساقط میشه قد افل حل مؤمنون مؤمنینی فلاح و رستگار میشن که در نمازشون خشوع دارن بس وای بر کسی که در نمازش خشوع نداره کوتاهی کرده در مقابل واجبی از واجبات نماز چرا واجبه؟ چون الله جل شانه در قرآن میفرماید وَسَّعِينُ و بِالصَّبْرِ على و سعينوا بالصبر والصلاة السعانات بجيدة الله باون نمازتو باون سبرتو وإنها لكبيرة چه كبيرة؟ چه بزرگه؟ والنماز بزرگه سنگينه مگر بر اونها اك اهل خشوعا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وفي صفات المنافقين يقول نماز برايشون سنگينه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وكسالات با تمبلي با سستي بلا ميشن براي نماز در حدث صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المناف سخترین نماز بر منافق چه نمازیه صبح وعیشا. پس نماز بر اونهایی که اهل خشوعن آسونه سنگین نیست و بر منافقین سنگینه چون بر منافقین سنگینه پس کبیره از کبائره کبیره ای از کبائره که انسان با اون کبیره سبب میشه که منافق بشه از صفات منافقی این که نماز برایشون سنگینه سخته دشواره با تنبلی و سستی براش بلند میشن خشوع ندارن در نماز ولی مؤمن نه. نماز براش آسونه راحته سنگین نیست علاقه داره به نمازش حب ال نماز حب این داره که الله جل شانه پس خشوع حالا بعضیا گفتند رکنی از ارکان نماز بعضیا گفتند واجبی از واجبات نماز ما کار بین اصلاحات نداریم اون چیزی که بر ما مهمه که بدونیم اینه که الله عزمون خواسته که ما در نمازمون خشوع داشته باشیم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة صلى الله عليه وسلم يفرميان ما من إمرء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله ما من امروان مسلمین هیچ مسلمانی نیست نماز فرضی حاضر بشه وضو براش درست بگیره و با خشوع بیسه سر اون نماز فیح سن وضو اول وضو درست بگیره و خشوعها و اون نماز را با خشوع ادا بکنه و اون رکوعش را با خشوع ادا بکنه اگر کانه کفاره مگر که این اون نماز کفاره گناهانش بشه اگر کبایر تمامی گناهانش بخشیده میشه مثل کنانچه راست سر حجیت دیگر مثال میزنم اگر رودی کنار جوبی کنار خونتون بود پنج وعده دارش تنتون میشه آیا چرکی بهر بدنتو میمود گفتن نه گفتن نمازم همینطور طور ها رو پاک میکنه جز کبائر چنانچه الله جل شانه در قرآن میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنكم سیئاتكم انت تجتنبوا کبائر اگر از کبائر دوری بورزید گناهانتو رو میامرزیم مالم یعطیک یعطی كبير کبیره و ذلك الدهر کلا یعنی همان تا وقتی که قیامت اماتبر شده همچنان این ثواب و پاداش هست برای کسی که خشوع در نماز داره خشوعش سبب کفاره گناهانشه در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند ان الرجل لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته یک شخصی نماز میخونه یک دهم نمازش بیشتر نداره تسعها ثمنها، سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رسول الله در زمان این حدیث رو دارن بیان میکنن که ابوبکر و عمر حاضر بوده یک شخصی میگه از شما نماز نمیخونه مگر یک دهم ده نمازش داره یک دهم ده دو دهم ده سه دهم ده چهار دهم پنج دهم از یک دهم ده شروع میکنه بعد تا آخر میرسه به نصفش یک سوم بعد میگه نصفش یعنی حق نماز انسان نمیتونه ادا بکنه خاطر همین انسان باید جبران بکنه با نمازهای نافله و سنت اون کوتاهی هر چقدر تو بخوای حقش رو ادا بکنی میمونه نهایت سعی و تلاشت نصفشه. برای رسیدن به اون نصف نصف خشوع در نماز نصف حق ادا نیازه که ما اون از کار و اورادی که در نماز سکرارش میکنیم معناش رو بدونیم اولین ذکری که ما داریم در نماز اولین ذکری که نماز باش آغاز میشه تکبیره همچنین ما در سنت داریم که از جمله دعاهایی که وارده طقیه استفتاح بین تکبیر و بین سوره فاتحه این ذکره الله اکبر و کبیره که در جزوه که ان شاء فردا بهتون قائلم داد این اذکاری که اذکار استفتاح نماز خصوصا که این چند روز با هم دیگه مراجعش بکنیم اولین ذکری که ما در جزوه اووردیم فرموده رسول الله صلی الله و سلام اون ذکری که یاد کردن الله اکبر و کبیره والحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة واصيلا الله اکبر کبیره الله اکبر نماز آغاز میشه الله اکبر دعای استفتاح آغاز میشه هرچند که دعای استفتاح دیگری داریم که ان بهش خواهیم پرداخت ولی خب همین شب سعی میکنی میکنیم که به اولین ذکر نماز و اونم الله اکبر بپردازیم الله اكبر اکبر اکبر اس کبیر الله که مشخصه الله اله معلوه معبوده الها یا له الوهه ان کسی که اسباب محبت و تعظیم پرستیده میشه الله محبوب قلباس خلب او را تعظیم میکنه بزرگ میپنداره الله معلوه معبوده اون کسی که فرسیده میشه الله اکبر الله اکبر اکبر از کبیر گرفته شده الله بزرگترینه الله بزرگ، به بزرگی الله بزرگی نید در مقابل بزرگی الله بزرگی نیست همه در مقابل الله حقیرن. الله که فقط بزرگه الله اکبر فزیلت این کلمه کلمه الله اکبر اگر شما میخواهید بفهمید و منزلتش جایگاهش. شما ببینید در نماز چند بار تکرار میکنید الله الله الله به الله از بالا الله دوباره به الله دوباره از بالا می پنج بار در یک رکعت در یک نماز چهار رکعتی 20 بار در شبانه روز اون نمازایی فرزد فقط غیر از نمازای سنتت ن و چهار بار تو فقط میگی الله اکبر غیر از اون ازانی که داده میشه الله اکبر الله ابر الله ااکبر الله اکبر بعد آخرش هم الله اکبر. شیش بار تو در ازان فقط این کلمه برات تکرار میشه الله ااکبر الله اکبر. مقصد چیه؟ برای هر نماز چه سنتش چه فرزش؟ می استیم میگه الله اکبر چرا باید باید بگیم الله اکبر. امر الله هم در قرآن. به بزرگی یاد کردن ازش الله جل شانه در قرآن میفرمايد و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله سبب به بزرگی یاد کردن از مقام و جایگاهش و منزلتش رو بهمون یاد می‌کنه میگه که الله را ستایش بگو و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ان الله كي فرزندی برای خودش انتخاب نکرده محتاج کسی نبوده چون کسی فرزند برای خودش در نظر میگیره که محتاج باشه ولم یکن يت... و شریک شریکی هم نداشته معینی همیاری همدستی نداشته در آفرینشش ولم یکن لهو ولی و من الدلی و کبر و تکبیر بدونید الله بی نیاز از تمامی خلقش الله بی نیاز از خلقش همه در مقابل الله زلیلن الله بی همه همین شما نیاز در بحث روزه الله جل شانه هو بحث بزرگش بزرگیش میکنیم ولی تکمیل العده و لتکبر الله على ما هذاكم روز عید میشه وقتی که خوشید غروب میکنه ماه هلال ماهیده میشه مشروع از اونجا تکبیر گفته میشه الله رو بزرگی یاد بکنیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر مشروعیت تکبیر در عیدین در حج لا ينا الله لحومها ولادي معؤها ولكن يناله التق منكم كذلك سختها لكم لتكبر الله على ماهذاكم و بشرر المحسنين للتكبر الله که الله به بزرگی یاد بکنی در مقابل اون هدایت و اون توفیر که بهتون داد این حجر بجا بیاید؟ الله ر با انسان همیشه بزرگ بپنداره. چرا باید انسان یادآور بشه و این کلمه رو معناش بدونه از بزرگی الله از مقامش و شانش ش کوتاهی. در مقابل عظمت و جلال و بزرگی الله کوتاهی من و شما زیاد قابل حساب نیست چشم انسان به نمحرم میخوره چقدر الله در قلب ما بزرگ بود اون لحظه چقدر الله در قلب ما بزرگ بود که چش را ببندیم از اون گناه از اون معصیت الله بزرگه اون بزرگی که وقتی که من سر نماز میگیستم میگم الله و اکبر بار الله و از که بزرگتر نیست غذا بر من حرام سخن بر من حرام نوشیدنی بر من حرام همه چیز را بر خودت حرام میکنی خودت را خالصانه برای الله قرار میدی میگی الله اکبر زن، بچه، همسر، دنیا، مغازه همه چیز چیزی از الله بزرگتر نیست همه را به خاطر الله رهاش میکنی این بزرگ داشتن الله جلش انه در اون نماز، در اون طاعت، در اون عبادت الله اکبر با اون الله اکبر همه چیز را بر خودت حرام میکنی، در همه امور و شؤون زندگیت با چنین باشی اونجایی که لقمه حرامه، حرامه اونجایی که غیبته، اون اونجایی که بدگویه، اون اونجایی که دروغه اونجایی که خوابه اون لذتش اون خوشیش اثر خودت بزنی بلند بشی نماز رو برپا بداری خاطر حب و, و علاقی که نسبت به الله تبارک و تعالی داری الله بزرگتر از اون در زندگیت هیچ نیست الله بزرگه الله اکبر هدف رسیدن به این مقامه، به این جایگاهه هدف در زندگی الله به بزرگی پنداشتنه در تمامیش او نه فقط در نماز نماز یک نماده یک نماز یک عبادت طاعت جزئی از اون تکلیفات که بر ما الله شر کرده تشهیات الهی زیاده بس الله جل شانو از ما خواسته که الله را به بزرگی یاد میکنیم خودشان بر سر مناره ها خودشان در حال استاده جه رسول الله خودشان در مسیرم میرفتن جایی اگر سر بالای بود میگفت ف الله اکبر اگر سر و بود میگو ف سبحان الله در سجده هم, هم همینطوری در رکوع هم همینطوری جایی که سرخم خم میکنیم میگیم سبحان ربی العظیم به حمد سبحان ربی الاعلی و بحمده بلی که بالا میاریم میگیم الله اکبر مقام مقام بزرگی الله به بزرگی یاد کردن سر بالایی میر این یاد کردن ذکر چنین خصوصا از رسول الله صلی الله علیه و سلام در مسیر در راه شونه چی میده کمال عبودیت و بندگی این بندگی رسول الله صلی الله علیه و سلام میرسونه و جایگاه الله در دلش اون ایمانی که باید هر مؤمنی در قلب و دلش داشته باشه میخوای معیار ایمانت رو بسنجی بزرگی الله رو در قلب نگاه کن. میخوایمهار ایمانت بفهمی. چقدر مؤمنی این ایمان چقدر میارزه نگاه بزرگی الله بکن در دلت چقدر به خاطر الله از دنیا زدی از هوای نفست زدی چقدر برای الله در نمازت ایستادی و چقدر حب به اون نمازت رو داری چقدر اون قرآنش رو خوندی. این مقام مقام این که انسان با ادعا کسب کنه. الله اکبر همه کس میگه گفتنش سهل آسون بر سر زبان الله اکبر همه میگن الله اکبر ولیکن کی اون الله اکبر رو از سمیم قلب میگه استه دلش میگه خالصانه میگه خاشعانه میگه خشور اصلی که نماز براش تشریح شده رسیدن به اون فلاح و رستگاری پاداش رستگاری هزینش سنگینه هزینشیه هزینش بزرگ داشتن الهی در تمامیشون در تمامی امور زندگیت الله رب رسیدن به این مقام نیاز داره به علم چه علمی؟ چطور ما به این علم برسیم؟ این علم جز با شناخت اوصاف و افعال الهی کس نمیشه تا الله را نشناسی نمیتونه به مقام عبودیت برسی مقام بندگی برسی تا الله را نشناسی چون عبودیت حقیقتش ذلت در مقابل اون کسی که صفاتش کامله تو باید اون صفات کمار را بفهمی تا بفهمی که تو ای تا بدونی این معنی بندگی را و حق اون حقش ادا بکنید ذلت خاری که باید در مقابل الله جل داشته باشی حقیقت حقارتت حقیقت کوچکی در مقابل بزرگی الله باید بش دست بیابی وقتی میدونی دست بیابی که بزرگی الله را در صفاتش و اسماءش و افعالش بدونی علمش داشته باشی تا نتونی به این درجه و مقام برسی نتونی الله را بشناسی نمیتونی اون بنده حقیقی الله جل باشی الله جل شانه در قران اسماء خاصه که او را به بزرگی یاد بکنید با و ابن جریر تبر رحمت الله میگه وعظم ربك يا محمد بما امرك ان عظمه به من قول وفعل واطعه فيما امرك ونهاك وكبره تکبیرا میگه امام ابن جریر میگه تفسیرش میگه الله بیت میگه ای محمد الله را بزرگ بتندار در اون دستوراتی که بهت داده چه نسبت به اون گفتاری که باید داشته باشی چه نسبت به اون افعالی که باید داشته باشی در تمامی امور از الله اطاعته بکون او امرش دستوراتش را انجام بده و اون چیزی که در ناهی کرده ازش دوری ببارس این حقیقت تعزیما و کبره تکبیرا محمد امین الشنقیتی رحمه الله ای اعظمه تعظیما شدیده بسیار الله رب زرگ و پندار و یظهر تعظیم الله في شده المحافظ على امتثال امره و اجتناب اگر می بدونیم که چقدر الله در نزد تو بزرگه نگاه کن چقدر نسبت به دستورات الهی پای بندی و چقدر از گناهانش دوری می و چقدر سعی و تلاش داری برای رسیدن به رضای الهی در حدیثی داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرماین حدیث قدسی الله جلشانه می گوید الكبریاء و رداری الكبریاء و ردائی و ازاری الكبریاء کبریاء و... از بزرگی الله جل تشبیه شده به پیراهن بزرگی الله جل جلاله و عظمتش و ازاری ازار لونگی که انسان می پوشه اون پیراهنی که پایین پیراهن زیر لباسش می پوشه تشبیه شده این دو تا وصف الهی عظمتش و بزرگیش به لباس سلما لباسی که در رو انسان می پیراهنی که روی لباس پایینش می پوشه اهمیت و جلوه بیشتری داره نسبت به اون لباسی که پایینه شاید قدری که میخواد شیک باشه لباس ظاهرش لباس پایینش بشه همیت نمیده به خاطر همینه که اینجا برای اینکه ما فرق میان این دو تا وصف الهی را بدونیم بزرگی کبیر بودن الله و عظمت این دوتا مثل هم نیستن بزرگی و عظمت مثل هم نیستن درسته ما در ادبیات خودمون در لغت فارسی خودمون شاید از عظمت و کبیر بودن الهی هر دوتا به معنی بزرگی یاد بکنیم. بزرگ و بزرگ. ولیکن در لغت عرب نبینشون فروقه. برای اینکه ما فرق میان این دوتا وصف الهی بیدونیم رسول الله سلام اینچینی به ما تشمیح میکنه. که الله جلیشه انهو گفته پیراهنم کبر منه، بزرگی منه و عظمت من ازار و اون لنگی هست که انسان میپوشه. فمن نزعنی واحدا من هما عذبتو کسی بیاد مناوضعه بکنه در این بزرگی و عزمت میگه او رو عذاب میدم الله جل شانه میگه. پس بزرگی الله جل شانه تفاوت داره با عزمتش برای اینکه انسان پی ببره به بزرگی الله جل شانه هم نیازه که انسان به مخلوقات الله و آفرینش الهی نگاهی بیندازه خصوصا انسان اگر میخواد به این شرف و مقام برسه نیازه که تدبر بکنه در بزرگترین آیه قرآن و نمایت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم تا انجایی که میگه وسع کرسیه ولا. کرسی الله کرسیه کرسی کچکتر از عرشه به وسعت آسمان ها و زمینه در حدیث داریم که از اثر ابن مسعوده که از سخنانی که حکم مرفوع رو داریم میان هر آسمانی مسیر 500 ساله بین آسمان, آسمان دنیا و آسمان اول آسمان اول و آسمان بعدیش بین کرسی و هم همینطور و بین کرسی تا آب که عرش الله بر روی آب میگه 500 ساله در روایت ابن مسعود اومده الله جلشانه از تمامی این مخلوقات چنین یاد میگه و ما قدر الله حق قدره بندگان قدر عظمت الله را ندونسه بعد میگه مسیر این 500 سال بین هر آسمانه این همه آسمان، این همه ستاره، همه مخلوقات الله میگه چی؟ و سماوات و مطویات طی شدن روی هم دیگه قرار گرفتن. یک ذره یک جسم کوچیکی در مقابل عظمت الهی چی نیستن حقیرن. انسان اگر میخواد شکوه و عظمت الله جل او بدونه باید به مخلوقات و به آفرینش الهی نگاه بکنه. بخاطر همین ما معمور شدیم که در ستارگان نگاه بکنیم. نگاه بکنیم ربنا ما خلقت ها ذا و این ذکر رو بگیم رو ربنا ما خلقت ها باطله باطلا سبحانک فقین عذاب النار ربنا ما خلقت ها این ستارگانی که انسان میبیند تک تک این نقطه هایی که انسان میبیند همین توری که خلقت نشده و یک نقطه اش چقدر از این ذکر هستن نمیشه گفت نمیشه گفت از مقدارش از عظمتش انسان اگر میخواد حقارت خودش برید یک کتابی ر ببینه که این منظومه شمسی در مقابل دیگر ستارگان و سیاره ها و این خورشید خودمون در مقابل دیگر خورشیدها ها و در مقابل سیاه ها و قصد چیه ذره بیش نیست همه این مخلوقات اگر عظمت الله میخوای بهش برسی پس اصلا باید فکر بزنه در مخلوقات الهی تا باید عظمت الهی پی ببره بحث این کلمه نمیشه در یک درس خلاصش کرد در کر بحثای دیگر که خواهد اومد انشاءالا بازم بهش خواهیم پرداخت اون چیزی که در این درس برای ما مهمه عظمت این ذکر و تکرارش در عبادت مول در نماز فقط این عدد رو دلوچش خودتون بیارید بیش از 90 بار فقط در نماز فرز نود بار فقط در نماز فرض ما مکلفی که بگیم الله اکبر به خود دیکم فکر بزن چرا من باید بگم الله اکبر نمازم که تموم میشه السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله بازم تسبیح که میگم سبحان الله سبحان الله بعد میگم الحمدلله 33 بار 33 بار 33 بارم بعد از اون باید بگم الله اکبر الله اکبر الله, اکبر، الله اکبر. چرا این قد تکبیر باید گفته بشه جایگاهش جایگاهش به خاطر گفتم که تو همیشه به نفس خودت مراجعه بکنی که چقدر خود را در مقابل الله و امامرش و دستوراتش خود رو حقیر دونسی خود رو به عنوان یک بنده دی دی یک بنده ای که حقیر و به در بدر، درگاه الهی محتاج از بزرگیش الله اینه که در دل ما این که بزرگ و کوچکی نیست در زندگی این, این که ما دست به دعا بلند بکنیم نیازمندی خودمون را از الله بتلویید هدف از خلقت آفرینش امینه که الله بزرگ بشه در جلوه چشم ما بخاطر همین کسی که دست به دعا و ذلت بلند نمیکنه جو رسول الله صلی الله علیه و آله من لم يسال الله يغضب علیه کسی که از الله نخواهی مقام بندگی عبودیت احتیاج نیاز در خود شخص نبینه الله براش خشم من ملن یسأل الله یغضب عليه الله برش خاشگین میشه پس هدف از این تکبیات رسیدن به این مقام مقام عبودیت و بندگی و زلت بزرگی الله جلو و بیاد به خاطر همین ما در حدیث جبرئیل وقتی که اومد زانو بزنی رساسا نشسته سوال پرسید از اسلام بعد از ایمان بعد از احسان این سه رتبه پله و قالت العرب من ان نقول تؤمن ولكن قولوا اسلمنا عرب گفتن ما ایمان آوردیم گفتن نه شما مسلمان شدید مرتبه اسلام ظاهره مرتبه ایمان بالاتر از اسلامه تؤمن ايمان يورديت. بل شديد. ما اسلام کلم تومنوا عرب گفت که شما نه ایمان نیوردید بلکه مسلمان شدید اسلام ظاهریه ایمان قلبیه و بالاتر از اون درجه احسانه ثم ورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه کسانی در حقشون ظلم کردن مرتبه اسلام فمنهم ظالم ومنهم مقتصد کسانی هم اختصار ورزیدن یعنی اکتفا کردن به چیزایی که بهش معمور بودن. و من هم بالخيرات. بالخیرات و کسانی هم پیشه گرفتن در خیر خوبی چنانچه جبریل از رسول زمانی که پرسیدن مرتبه احسان چیه قال انت عبدالله که انک ترا الله را چنان بپرسی که جلو خودت میبینی چطوره یعنی دعنی چه جلو به خودت میبینی جلو به خود ببینی از عظمتش، از شکوهش، از جلالش، از بزرگیش از کبریاش، از ملکوتش، از جبروتش ببینی در مقابل اون در مقابل اون جبروتش، در مقابل اون کلمه کن که فیکون میشه کل آسامان ها و زمین ها دگرگون میشه درجه احسانه درجه احسان و بندگی انسان باید دنبالش باشه تا کسبش بکنه همینطوری به دست نمیاد فداکاری میخواد، زحمت میخواد، علم میخواد باید انسان الله را بشنسته به این مقام و به این جایگاه برسه صلی الله علیه محمد و علیه